اللهم اشترایم و که در بحث مجمر و در کتب صادقی ادهی مثال آورده شد و مسائلی در مجمر یا در مبعیم به اصطلاح و اعتبالی که اینها تأثیر در و همه شد که در ایده از ما حتی مثل محاله اون تا این مبارد و محصالی اقویان شد تو دارد این اخیران کردن حتی مثل در علیمی اصولا در بحث مجموان اصلا نگوردنی مثل آدیه ها که و این موارد رو هم متعرض نشدن خدا هسته استادن که آوردن نساطن محساس هم به اشاره قرد کردن که این ها من موردی بررسی خودش روشید از اگر مورد از مسائلی رو که ما در اصول متعرض میشیم مطاله باشه که در فکر تحصیل داره خب بدا اشکال این اینجور مطاله بیجه اینا آوردن اینا داره تحصیل در فکر و گفتیم برای این که این مطلب هم روشن بشه زمینه های ک یا این مسائلی رو که آوردن برداشت ها تو هست این در کتاب درکی اقوضای محمده مدتی برداش رو بالمانه آمده همه رو نرمو کنید و بقیه مسائلی رو که اونها در این جهت متعرض شدن حال شد که یک مسئله اول تحلیل و تحلیل که مضاف در اعلام صبح و علیکم و را و مناطق کو از این جور چیزها این به اصطلاح خیاندار یا اجمال شده اون وقت ایشون در اینجا متعرض مسئله شده اصلا راهی متعارضی که در اصول بوده به احتمالات و هر چنین انصاف قضیه این مسئله مسئله ای که ارج شده و آثار مهم مفرگی برش باز میشه و اینطور نیست به همین مقداری که اینها متعرض شدن که آیا مثلا فرسون حرب مرده میته خصوص تحریم عکله یا شامل تحلیم ها دیگه هم میشه بلکه اگر دقت بکنیم غیر از تحریم احکام وضعی هم ممکن است به از این استفاده میشه مانه به نیست حکم تکلیفی عبارستان اخرهای از زجر اگر گفتیم فقط زجر هست تو میشه حکم تکلیفی اگر غیر زجر مسائلی مثل بطلام، نجاست این رو چیزها به دیمانه نیده سرا این ها حکم وزیدی هست و اگر میتونیم حکم تکلیفی زجر روشن بشه این مسیحه که بگیم مثلا نرو بیمون آیا این فقط یک نوع زجره دیگه هیچ نوع دنگالتش مطلبی نیست مثلا فقط کنین این در حقیقت دستش بسته کلی شخص نده بیار. این فقط زجره یا به قول آره به این فقط زجره این طرف از این کار یا نه مثلا اضافه بر این یک نوع احکام وردی مثلا در ذمه و قراردازه شده توش مثلا تنبیه هست به لاختری مساعد و لوازم دیگری برش باز میشه پس این مسئله این مسئله است که مسئله کاملا مفیدیه بلا که ما از کردیم ترک بهتر بحث و اون صورتیست که این بنده اصاب با سخصیدی روی توضیحش داریم و این که ما به این مسئله احتیار داریم و این ها توفر احتیار داریم یعنی نمیتونیم بگیم اینا دیگه موردی هستن توی مورد خودش با بررسی کنیم انصافت برای تحلیل نصوص قانون، ما به این مسئله بیاج بریم که تحریم رو تحلیل بکنیم اما خب یه مقدارش رو تو مباعث نواحی آب و زن آیا تیغیره اینجاز فساد میکنه یا نه که عرض کردیم اون بحث هم اوته بحث صحت و فساده و یه مقدارش رو تو بحث موجود آن بین یعنی سر اینکه که آن و نه سنت این دو آورده شده این مسئله کاربرد داره و اختصاص بگیه مسئله نداره. و آثاری در فقه برش مفرده میشه لذا اینو رو به نظر ما مطلب همینطوره این واقعا این مسئله کاربورد داره به دو هم به لحاظ قانونی این که اصولا تحریم در هر شریعتی در هر قانونی در اعتماس قانونی صحبه این تحریم معنی چیه؟ یکی به لحاظ قانونی کاربورد داره یکی هم به لحاظ تحبیری چون ما هنوز در فقه اسلامی یه اینو تقلیدات تعبیری داریم مثلا حرم علیه کو می که داریم انما خمر الغل میشد رشتون عمل شیطان داری سر کشتن داریم یک رج گشتن گوه داریم رشتون عمل شیطان داریم یک دو دا حرم علیه کو می که داریم حنوث ما مشکل تعبیری داریم که تغییرات ما یک نوع روی داریم از اون طرف هم لا تنک و مانکه آوا و اون داریم از اون طرف هم در ترزمو اولو تن و داریم دا در بحث نواهی من متعرض این نقطه شدم که این این بحث آیا نه دلالت رو فساد میکنی یا نه این در مجموعه ادله کل آن در اختیار ما هست ما مشکل داره چون نهب که در ادله ما هست یک نواه میستن ما همه نهب هم تو زینه اون لا تفل لکه نهب در مجموعه یا روایاتی که ما داریم و آیات مبارکی یک نواخ نیست و ممکن است از این عدم یک نواختی آثار مختلفی بار بشه به لذا پیشنهاد ما اصولا قبل این مواحظ این بود که در مواحظ اصولی ما اصلا یک پرسی بگذاریم برای یعنی یک قسمت اصول رو برای خود اعتبارات قانونی و شرق اعتبارات قانونی اصحاح حقیقت حکم نماز های ادو وضو حرمت مثلا اگه در یک قانون نماز این حرمت چیه حدود این وجود چیه حدود استحباب چیه هم به لحاظ وجودش هم به لحاظ متعللش مثلا فرض کنید استحباب ایوم به لباس پوشیدن تعلق بگیره معنای استحباب خود در یک قانون شده مستعد ایوم لباس پوشید مستعد باز خانه ایجوری باشه مستعد باز ثبت است روا در نوا در خونه در مسکن در هر مح... محکل مفعن مشرب آیا حصولاً مثلا مستحب مثلا رسول صدیق خوشایند کله فارسی شیشه باشه مثلا زرف شیشه ای که داریم مثلا مصدقای این استحباب معنی این بحث های قانونی باشه بشه و به نظر ما این اصلا مستقلاً با درآیی بشه یه بخش بیش هم بخش ظهورات یعنی مرض در همون قانونه اما الفاظی که در این زبان عربی خاص در لغت قرآن و روایات به کار برده شده نسبت به این الفاظ اون ارتباط قانونی اصلا از لا تحزم و اقدسن نکاح این احساسه ما خیلیدیم به ما احساسه هم از سون یا نمجد که اگر عبد برزن در ایام عده حرمت عبدی میاده ما که اعتماد دادیم، از همین لا تنظمون عبد یعنی اینجا نفر خورده به عبد نگفته به لا تنکبول نه به لا تنکبول نفرده به لا تنکبول مونده که حالا اگر انسان در استرگی رو زن پدر زمین یعنی زن پدرش رو عبد بزد اون عقل خاصه داره تو حرمت عوضی هم با خاطر خود داستن کهوز این رفتی بونه نداره که هر از راه عقل حرمتی بیاره خودش تیده وجود وجود اما در فلسفه مثلا یک دن بیگانهی رو که شوهرم داره عقل بست این دلیل نبریم که حرمت عوضی بیاره اما در ایام افده رو دلیل داریم. ما این که اون جانسن شوهر داره شون دنگه در این داد تعزم و عقدتن از عزم نکنه این که نکنید یعنی شما اگر این عقد نکاح و این عقد رو انجام یه حزم یعنی شما نمیاد دقیقاً اینه که با بر نمیاره اگر عزم برداشتتون میشه حرمت علیدی میگویند که عزم بکنید, بکنید. ممکن است که از خدا ممکن است در زن و در ایام عده پس بنابراین این بحث به نظر ما بحث خوبیه یعنی این بحث که تحریم و تحلیل مضافینه و احیان این بحث به دو جهت خوبه هم به جهت قانون خیلی هم به جهت تعبیری و ممکن است همون نتیجهی که من عرض کردم نتیجه گیری بگیم میدیم تحریمی که در کتابت توسعه پیدا میکنه اما تحریمی در سنت اونقدر توسعه نداره فقط شما بگیم مثلا یعنی ارزش رو و یک مدت داره حتی یاب لغره حسابو میدونن اما وقتی عقد از ما برداشته ببین نکاح ناخن که اون ما نکاح واو میاد نکاح رو برمی‌داره یه طرف میاد عزل رو قل وقتی این عزل برمی‌داره معنیش اینه که دیگه نیت نیت, نیت رجوع نمیشه نمیشه عزل گونزن نمیشه خب پس این مسئله مسئله خوبی است باج موابیس اصول بیا حالا اون اصول اهل سنت جایی دراشته پیدا نکردن گفت مجبر گذاشتن چون الان یکی دوست در اونی برای این بحث ندارن اون بحث در اصلا خوبیه در اون هم نیست که اونا کردند کردن دو استدلالاتشون تو وارد بشن مسئله دیگری زهب بعضال هنفیه و هم قوله تالا و هم صحوبه رو او سکن مجملون و لانه هو یهتملو کساب علیه احکام آمدی جلد سه صفحه 9 به بعد این الان صفحه چارده شده مسئله در نوع یهتمل و مرس جمیع رست و یهتمل و مرس بعضی این را هم یکی از مسائل قرار دادر و همی سوگه که آیا مراد جمیع رسته یا بعضی از یه مقداری هم کشون خودشون بحث کردن که آیا این اجمال داری یا نداره و اولا تقدیر اجمال داشته باشه به حساب لغت داره در محصه جمعی رسی یا به حساب سنت و مجموعه قرآن خارجی خب انصاف رضیه این بحث رو یه اصول اوبردن خیلی فنی است از باهایی برام اصدادهای خویی انصافش این موردیه دیگه این در خصوص یه گاهی مبارکه که در خصوص این آیه موارده که آیا مست جمعی هست یا مست برده هست این بحث اصولی نیست یعنی انصافت یه بحثی نیست مثل اون بحث نیست که تحریم و مضافه الال احیان باشه اون فایده داره یه مورد خاصه به اصطلاقی که قنده خدمتونه هست خوبه بحث هست نمیخواب بگم نیست بحث اجمال و عدم اجمال از درش مطرح هست اما این دیگه اصولی نیست چون در دیگه خود آیه یه و در همین مورد خاص است و بحث سر همینه البته ما یه مرضیگه هم در باران داریم بشون دیگه متعرض نشدن یک موردی هم داریم که با آمده اونجا هم ده از مراده زارنم تا اونجایی که من میدونم به اتفاق اتفاق ما که قطعی تونه داریم اهل سنت هم خالی باشن میتستم این لحظه وجود کن. به ایدی کن منه به وجوه کن در باب تیمون در باب تیمون چون با آمده ببینیم فخصه رو وجوه در باب زو وجوه و زو فخصه رو وجوه تمام ور شده میشه اما در باب تیمون هم رو به وجوه کن با آمده به وجوه کن میگن اونجا مست به تمام صورت میزد پیشانی هست یعنی پیشانی از محل رویدن مو هست و عبرو فکر میکنم سنیان قائل بازار و الان این لحظه در ذهنم میسونا تیمون رو بلا مخالص دارم تو ذهنم اما شاید شو مشتور شون باشه دیدم اما الان میترسم من خیلی مخلی که کمی ذهنم خراب میشه این نسبت نمیده پس این مسئله انصاف قضیه مسئله نیست که به اسطلاح تر بیا. مسئله مسئله سه و مذهب الجمهور انهو لا اجمال فی قولی سال الله علیه و آله رفع امتی الخطأ و النسيان. ایشون فهم داد ابو حسین بصری که از زوجان ما اوتزرلاز و ابو عبدالله بصری و رئیم ما، انهم مجموعان ادی گفتن این حدیث را مجموع هم گفتند مجموع نیست. این هم ایشون بحث کرد. ایشون که بی مجمل نیست خود ساخته خود بنده. ایشون میگه که وله حاضر چه مجمل چون هر کسی که با عرف آشنا باشه میدونه که وقتی گفتن رفع اممتی الخطر یعنی معاقضه این قبوبه ایشون این دوره میکنه وله حاضر این کل من عرف عرف اهل لغه لایت شکت ولایت ردد اند تماعی قبل سیه لحظه رفتن که از خطر و نسیان فی اند مراده منداله رفت قل معاقضه و اقام ایشون ادعای ظهور میکنه که این یک ظهور و عرفی داره که رفعه خطا یعنی مراد اما از خیلی بحث عقوبت یا ایشون معاخذه یا اقام یا عقوبت این در اصطلاحات ما هم تو حدیث رفت هم آیونی که نوشتن مثل مربو شیخ انساری و دیگران مطرح شده چون رفعه اممتی در کتاب ما هم مفصل مطرح شده اونجا هم که گفتن عقوبت خیلی از بزرگان ما منحصه در عقوبت نمیدونست ارز کنم باشه بی این مطلب خب چون مطلب خدا اینجا هم آقای کوئی متعرضی این مسئله نشده هم حالا صرفش اینه چون ارز کردن ارز این مسئله پیه فیل ابتلاع داره نیدونم کجا بیانش تو اصول تو <تصفيق> فیل ابتلاعش بیشت از یک مورد پیه جای و اصولیش پیدا نکردن این رو بزن که مجموع رو غیر لیکن ما علمای ما تو مجدان و باید نوشن دیشون هستم قدمای ما اما این متعرکلین همسال مزمومات خوبی ندارن چرا چون حدیث رفت و علمای ما مفصل متعرض شدن بگه تو براحت فرق ما با آقایان ها چون ما دیگه نیاز پیدا نکردیم چون تو بحث براحت مفصل متعرض حدیث رفت شدن رو هم دیگه که خیلی نیاز پیدا نکردن اینجا متعرض بشن اصلا هم حضورتون که این حدیث تر ارده از افادیت قول من رو و همینطور کلام ملازوه هم فرمدید اینشون قائله که ظاهره در معاخذت میگه مجمل نیست اینشون میگه اجمال نداره اصلا که تابقا حدیث تر رو بزرگاه نهر سندن در کتبشون عوردن مثل که احل سنت و حدیث سنت دارن سلاتیه همین خطه و نسیان رو اکراه بزن یا استرالیه که از این اصلاف اون که سبونیش رو سویه این مطن سلاتی رو اهل سنت دارن از کنم که رادن بزرگان اهل سنت که حل و عم حدیثی شما هستن که رو قبول نکردن حدیث رد رو قبول نکردن مثل بخاری مثل مسلم سفرجا ما نه هم بر اینا حدیث را اصلا قبول ندارم با این متن شلاسی قبول ندارم اما خب ادی دیگه بعضی از بزرگان قبول دارن مثل ابن حزم اونم اورغوزن امامو کل حدیث میذارن ایشون سردش معتبر میدونه می و قبول میکنه یه ادی دیگه‌ای دیگه هم دیگه. هست بعضی از مردم فقط در اهل سنت این به خاطر سند ولی چون اینکه قبول ندارن که چی غنانه هاذل بحث یه جو بحث ایشون نیست چون حدیث قابل قبول نیست یعنی قبول نشونه ای که قبول نشونه. این را گفت ناشناسه قابل قبولش اما اونایی که قبول کردن مشهور همونطوری که ایشون گفته به استثناء بعید از معتزله مثل ابو عبدالله الله حسین بخری قابل شد مراد مؤاخذه است erkadam goy گفته شده جای عقوبت گفته شده جای اخاب گفته شده این بنده حساب با و این مطلب تر بشه گفتید به جایی اینا بذین احکام جزایی مرادشان از و مؤاخذه احکام جزاییه یعنی احکام جزائی در حال خطا و نسیان برداشته شده و این توضیح رو من ارز کردم احکام جزائی به طبیعی دو جوره یکی احکام جزایی که بر عنوان واقعیش عنوان تمرد علال قانونه هر کسی که تمرد در قانون و از قانون میخواد عبور کنه احکام جزائی برش قدم کنه سا از ردش میخواد رد باشیم بابنسان یک احکام جزایی عنوان تمرد علال قانون نیست یا عناوین واقعی نفس کاری به تمرد به قانون نداره این شیشه کسی میزنه شیشه کجوری میشکنه. این بخت مجزای زمان باشه باز مثلش بده این بحث تمرد نیست این شیشه شکسته بود شیشه نوتر بیا بحث تمرد نیست دست کسی رو بذاده شونده فرض گوش کسی رو بریده این باز تدارک بشه یا نقض تدارک خونه کسی رو خراب کرده شخص کشه این نوع احکام جزایی داریم که به اصطلاح اینها عنوان تمرد نیستن اینا بیشتر به دنبال رفع نقیتن خونده قصد بکنه یه نقصی پیدا شده یه فراغی ایجاد شده یه غفره ایجاد شده اون باز پر باشه در اینجور موارد کاری تمرد نداره میمخواد بینیم آقا آتیه متمرده نه متمرده نیست دوشرت میشه سنگ... سنگ... از پشت یک سنگ سنگه از جای شیشه شیشه حالا هم نداشید اختیانی هم نداشید پوشه خواب بوده غلط یک نفر رو بوده مر تمرد قانون نیست سنگ رو هر بی پر نمی‌کازید خیال دیار ندیدش دیار این بیامون کسی نیستا شما پشت یک سنگ نفر خوابیده بودی خبر ندیدید زدن قانونو مجروح کرده صحبت تمرد نیست اینها به اصطلاح باب زمان بشنگن باب دیاث بشنگن در هنجار احکام جزایی هیچ شرط نمیشه بشه چرا چون در این احکام جزایی حالات فاعل دیده نمیشه برای احکام جزایی یک نقصی پیدا شده این نقص باید برداره بشه در احکام جزایی اینه میخواد خطا باشه میخواد نسیان باشه میخواد استقرار باشه اقرار باشه هر چی باشه فهمیدون جنگ یک نقصی پیدا شده این نقص باید پر بشه برداشته بشه پس حدیث سرق ناظر است به احکام جزایی که ناشی از تمرد این خلاصه نظر اهل سنت که جماعت اون براتون در شر حدیث سر رفع عن عمت یعنی خطا کرده شده یعنی چی؟ یعنی مؤاخذه و خطا نمیشه چون خطا کرده در امه نیستون که از مؤاخذه نمیشه ایشون تعبیر کرده مؤاخذه حالا شما ممکن است کمی لفافیت شمکری بشه ببین شکلها قالنوی رو شدیم به احکام جزایی که مترتب میشه بر عنوان تمرض احکام جزایی که مترتب میشه بر عنوان تمرض بر عنوان اتیام پس حدیث رفت که فیغم برای حدیثم فرموندن نازر دیگه معنی هست یه اجدم گفتن نموشمن از ما نمیشی ورداشته شده علمای شیع هم عرض کردن چون در روایات شیعه شاید چونی که از زبا سنت هم یه مفتن ربایی هم هست اما خب شازه و در احادیث شیعه که در احادیث سنی ها نیست مفتن صداتی هم هست رفع امامتی ست و خسال یا ست یک مفتن صداتی هم هست شیشتر. یک مفتن نقطایی هم هست تسعه خساله هم یا تسعه اشیاء هم ما داریم مثل تصایی به اصلا یه مثل مختایی هم ما داریم یه مثل بسیار نادری در فخور رضا آمده و سیده با سیده خیلی زیاده اون می و میشه دیمه واردیس کرد و انالله رفعه انه مؤمن داره اون تعبیلش هم مؤمنه انه امتی نیست که در فخور رضا آمده به جای چیز انه امتی بدج مؤمن خب طبیعتا پس معلوم و علمای ما به مناسبت باب براءت از این حدیث بحثی عدم که مراد این حدیث چیه خب ایده ایشون فرض کنیم شما غلطی خود شیخ اهتماماته که مراد همین معناست احکام جزایی که دار ندارد عنوان عصیانه ایده از علمای ما هم نفی معافظه و نفی عقوبه و این رو اینا رو گیرست ایده از ما علمای ما معتقدن که نه. این تحمیل داره نفی حکم هم اون وقت این حکم رو که مخواد برداره چه شرارتی داره مفصل آیان ما در اونجا انصافت بحث های بسیار مفصلی کرده. مثلا مفتن چون نفی حکم مخواد بکنه حکمش این حدیث لسانش لسانه امتنانه احکامی رو برداره که امتنانی باشه احکام غیر امتنانی نه مثلا شما الان گروس نشدید اسبابی بشایی، وقتی کلاً حمزه قضاایش خوردیم، حالا با اینکه جایز نبود. خب دو تا حکم داره، یکی که حرمت، که اکمال دهی که به عقوبتی داره که ان شاء الله وارد میشه. یکی هم زامن شدن این قضا چون قضای دیگری رو خوردیم. اینا مثلا حدیث اثر اون اولی رو برمیداره حرمت رو بر درمیذاره اما لمان رو برنمیذاره. چون اگر ضمانت برادر اینطنان نیست، امتنان باید بر امامت باشه. برای من امتنانه، من مجبور شدم خوردش، اما برای اون صاحب مال امتنانی نیست، منتی بر اون نیست. و چون تعبیر گفتن اممتیه، این امتنان باید به لحاظ امامت باشه، نه امتنان دل حاضر فهم لذا حرمت رو درمیذاره، زمانت رو بر نمی‌ذاره. این بحثای اینجوری مفصل دیگه آینه یا چون به این حدیث یا خواستن در مواد قاضی میسور تمسطح که بکنن که آیا این بحث رو مستر کردن آیا با حدیث رفت میتونید تمسطح بکنیم برای اثبات وجوب اجزاء وقی یا نه مثلا یک کسی در نماز یک جزء نماز یادش رفت نسیان بدا کن بحثی کرد که خیلی خب آنشون نسیان داره رفت انعومد یا نسیان این ازش برداشه آیا ایشان تکلیف به بقیه اجزاء نماز دار یا یک جزء نماز رو مجبور روی استرار ترک بکنه نمیشونه انجام بده قیام رو به سیدی میتونه یک جزء نماز روی استرار ترک میکنه آیا تکریف به بقیه اجزا داره یا نداره علمه ما ما مختلف نمیشونه چون حدیث رفت رفت میکنه وضع نمیکنه کار حدیث رفت بگه این قیام واجب نیست چون نمیشه. اما نه با قیام نماز ده روز بود یک دوشن قیام بود این خیام به خاطر حدیث برداشته شد دیگه مفاد حدیث رفت این نیست که اون نه فرس بیار حکم اول ده تا بود منحلم بشه ده تا بود اول انحلال این آقای قبول نمی کنن. انحلال حقیقی قبول نیم این انحلال مجازیه میدونم انحلال اینا قبول نیم انحلال را قبول نمی کنه نمیشه خب چون, برفر برفر برفر نمی چون واجب ارتباطی است نمیشونن اینا عجزا در این حجوم بی که دارن ارتباطی هست ده تا بوده گفته نماز بخون. حالا شده چه دلیلی هست که الان نوصر انجام بده سوال اگر او بعد این حاجی این شو مستقل اون که رایلا نظر رو داشتن اون که الان یک ادعا نه از حدیث طرف تماس اینا جواب دادن که حدیث طرف اینطور نیست یعنی طسما در موارد اصولی مور موارد فراوانی رو بر اون حدیث طرف چرا سنیایی چون سنیا اصلا اعتقادشون که حدیث رفت نفی محاخذه و حق نیست که این بحث دارو بخنیش. شما اصلا و حق چرا گرفتیم که این این فقط نفی است پیش از, از نفی محاخذه ایچی نیست خب میتنم که باشی واقعیتش محفوظه با حالا. واخذه ایام به خاطر امتحان در نک محافظه. محافظه اما این که بر. بله میدونم اما این که ناظر باشه که حکم میخواد خاطر بر داره برنامه رو حضور علای حوال حدیث و کردیم اون نتیجه نهاییش اولا ایشون هم که بحثش کرده هادی میخوام بگم اینکه ایشون بحثشون یکیه که دیگه ما خیلی وارد این بحثا نمیشیم اولا به لحاظ سند به نظر این حقیق سوا تخصیص توضیح بده حدیث را هیچ شلوی سنتی ندارم چون یک حدیث واحدی که از محاسن برقی اومده بودن ثلاثیه مثل احادیث اهل سنت ثلاثیه و از اجرش اینه که هم مخدش هم با متن اهل سنت فرق میکنه و لسان تطبیقی هم تو تذویر بر مورد شده حدیث را اون لسانش لسانه لسان به اصطلاح تقیه فقط یک مورد است نهایت جمع کرد به این آیات روایاتی که در نور کلوش اصف و علیه فقط مثلا احلالله و بنابراف آخذنا این نسینا او اخده توی محافظه است که این محافظه است جمع از آخذنا این نسینا او اخده از او این معاخذه نکنید خب اینا همین میگن خب نهی که حکم برداشته شده علایه حاله یک بحثیش که ایسیم کن من گفتم شیخ ما از بنده گردن از ما یه بحثیت تو حدیث رفت رو دیم که حدیث رو با شوارد قرآنی تطریف کردیم و رضا خطاب و نسیان در قرآن آمده اونم لا توافظم و سر انداختیم که این حدیث رفت و چه بر تمام چون نمی‌خوان وارد بحث شد شب علایاهان این رب بنالا بر اول سال پنجم مرعثه در شب معراج سوالاتی که پیغمبر از خدا درخواست کردند اگه اینجوری باشه حدیثرا اگر این درست باشه برمیگرده به ایام مکه و ایام مدینه من چون در مذهب حدیثراش یه خاص خودمون داره توضیحات زدم نمیخوام فعلا وارد این بحث بشم من خلاصه بحث رو عرض بکنم راست مشکل اینه که ما این عناوین اصطلاحاً من اوکرن و قلبو مطمئنون به ایمان اجراء عناوین اهل سنت 3 تاست عناوین ما 6 تاست از این عناوین 6 تا 5 تاش رو در شبابه قرآنی داریم خصوص مالای علمون نداری، ولی اون مشکلی در مالای علمونه اون فقره مالای علمون هم سنیا ندارم ما داریم و حدیث اونا ندارم اصلا من یک فشوردهی را عرض بکنم تو زیادش در جای خودش به نظر ما اولا حدیث رفت مثلا با این محن سوداتیش شده حل کلام ماست سندش ثابت نیست البته حدیث و یه مقدار اختلافی در کتاب صحیح آمده مرسله در کتاب شصاله شیخ سنن آمده در مسند که ادعای از علما هم نمی تایید میذارند شیخ انصاری گفت این صحیحه اون هم صحیحی نیست این باز با سند دیگری مرسلا در کتاب کافی آمده اصول کافی آمده که سعی نیست باز همین حدیث در کتابی به نام نواجر آمده نواجر احمد اشعری باز بعضی‌ها گفتن این صحیحه اون هم صحیح نیست متونی که ما داریم در شیشتایی در تمام این اسانیدش خرچه است البته به لحاظ بزرگان ما مرموم شیخ توسی هم حدیث رفعه ما رو نیورده یعنی در هیچ کتابش این حدیث رفعه سته یا سته رو شیخ توسی نیورده و هم خیلی عجیبه من اون کتاب مرموم صدوق رویان نگاه نکرده یا قبول نکشون صدوق مرسلا نورده در کتاب فقید مرسلا نورده. قوله هم تو ابواب فقه نیورزه، اصلا حدیث راص ابواب اصول آورده ایمان و کفر آورده کدی آورده حالا شیخ چرا کنم چرا من خبر ندارم و این بحث های مفصل ما اصلا اصلا شیخ بحث از را حضور مطرح کرده اصلا به حدیث راص نظر نداره کلا. این بحث های مفصل بحث های بود که بیشتر مخصوصاً پیش اصحاب ما بعد از دعوای اخباری و اصولی مطرح شد. یعنی از زمان زهید بوعانی قدس الله سره البته در اوذهای فعلی ما که شما خوندیم به این تفسیر رو مثلا اگه معالم خونده باشید به این تفسیر حدیث رفت رو شما در رساله شیخ دیدین در فعلا در مباحث فعلی ما بیشترین حدیث رو بیشترین بحث رو مرحوم شیخ کرده و بعدش مثلا مربوط موازیه مجموعه های نایین قدس الله محصه و آغازی البته نظر من باز بیشتر خیلی در این حدیث زحمت کشیدن و طبائق و لفتارف زیادی وکه مشکل کار یک عدم حضوره سندشه دو هم به نظر ما هم و همین آقایانه مران نفی احکام جزائیست نفی حکمیست البته یک نکته ایران بگم ما در اون مبحث از کردیم ما گاهی اوقات یک حدیث مقلق میشه به مشابهاتش برمیگره و به این مضمون در کل روایات من چیزی نییدم شبیه این هست اما رقی به این نداره دو تا حدیث بیشتر زهرداش هم محل خلافه یکی رفع امتی الخسای یکی رفع القلم عن و مجنون و نائب اونجا هم, هم، اونجا هم دروازه نهایی اون حالا اینجا دروازه و حدش اینه که اونجا هم انصافا هم مواخذه است همون, همون احکام جزاییه و رفع القلم عن السبی. حتی یقلق و عمل نائم حتی یفیق و عمل عمل نائم حتی و عمل مجنون حتی یوفی. انصافا در اونجا هم اختلاف است. اونجا هم مراد نقیقو کنید هم نفی محافظه یا به بعضی ها مراده از قلم قلم و معافظه و احکام جزایی است نمیشه تحقیقش تفکیه، مشکله پس این هم راجع به حدیث رف و سرش رو هم من توضیح دادم. سرش رو هم بنده کردم چون در اینجا رفت آمده که مفاد لیسه است انا امتی آمده که طبعا میشه مفاد لیسهی ناقصه یعنی این حدیث در مقام نقیه یک چیزی از امته به این عنوان نفی خطا رفعه امتی که اما خطای تو مال تو نیست از کردم بعض از آیان اینا لیسه تامه گرفتن میگن خطا نیست نه خطا مال تو نیست رفعه اممتی این خطا مال تو نیست وقتی که بناسید خطا مال انسان نباشه خواهی نخواهی موضوع احکام جزایی منتفی میشه یا مثلا این اکراب اعتراض ماده تو رفع عنت ببینید <تصفيق> یعنی بدن به نفر مفادله این ناقصه از اون ناحی میشه شما درسته با ماشین از نظارت کردین وقتی پلیس شما میگه میاد یک آلپشاری ای تو یک اسلحه شما رو تهدید کرده یا یه بچه مریضی داریم در شرف موته میگم من برای رسوندن جان بچه مجبور بودم اعتراض نظارت بشم در اینجا چی میگن میگن اما این چرا گرمز رفت شدن مارتونی رفعه وقتی مارتون نشود یعنی چی؟ یعنی افتا موجودایی بار نمیشه پس مراده از خطا و نسیان همون اعمالیست که این خطا این سادر میشه عمل انسان حدیر سلم مفادشی خب نه اون تابعه واقعه خودشه به من دست میدونه وضعیه اگر میگفت رفعه اصلا خطایی نیست خطا مال تو نیست خب خطا مال من نبود من خطا مال این فعل مال من نیست اما اون نفس پیدا شده شکسته بلقی شیشه شکسته که در شکستن شیشه در شکستن شیشه لازم نیست به من نسبت داده باشه چون فعل من بود دست بود کار معمول. علای اله بنابر این، تا اینجا ان شاء الله تعالی البته احمد بن حنبر همین تصور کرده گفته خب اگه حدیث خطا رو بگیریم، وا می‌گیم در خطای دینی نیستن که بو در آیه هست. نه این گوش معنایی نداره. علای این راجع به حدیث رفت پس در این کتاب بحث از حدیث رفت کرده. علمای ما هم بحث نکردن چون تو براءت آوردن و خیلی توسعه دادن بیش از اون مقداری که بحث مجمله بود یکی از بحث ها اختلاقون فی قولیهی صلی اللہ علیه و وآلی وآلی وآلی لا صلاحات الا که بحث کردن که در مثل لا صلاحات الا بطهور آیا در اینجا برای نفی کمال یا نفی صحت آیا اجمال داره یا نداره توضیح مثل همین شاید روشن شد این حدیث بحث حولیه این خواهد میگم بحث ولیه لکن این ها در چه موردی در درهم مورد خودش درسی بشه بحث پنجم رو فرق تو ایبیهما هم, هم به لحاظ قرض گفتن مشمول هم به لحاظ یت چون گفتن قرض سر می‌کنه انسان مجبور بکنه یه چاغو بش بدن اون بولیده نشه جدا نشه هم بحث واقعی که در وجود باید مطرح بشه جاش در اصول نیست بله الله ذوالوارد اذا امكنه حمده على ما يفيد و بله معناً واحدن و علامای وفیل و, و معنای ممکن است یک معنا ازش استفاده بشه ممکن از دو معنا غزالی گفته که این مجمله غزالی گفته که این مجمله چون به اندازه احتمال لکه مشهور اصول اهل سنت معترض هستن که این مجمل نیست و مبین و حمل بر هر دو معنا میشه اینجا هم این بحث لطیفی لکن همطور که از کردم بعد نیستو هم برسه مجمع جاش شده چون جایی پیدا نکردم برش ذکر بکنم این یک بحثی که کار تو اصول داره و ریشه های بحث سر همه مسئله معروف برشه حجیت زهوره که ما توضیح دادیم که در وجه حجیت زهور دو مبنای رئیسی هست مبانی دیگرم هست دو مبنای رئیسیه یکی این که حجیت زهور از اینکه این که است در هست داره کش یه راه دیگه که ما کاری به مراد نداریم همون زور لفظی نفسر نگاه میکنیم مخواد مرادش باش مخواد نباشه که اسمش باشی میساق و اقلائی این مسئله درسته این مسئله در. و جاشم برد نیست تو مجمل گفته باشه به هر حال برده اختلافو مسئله هفتم هم فی کنه حمل و علی حفظ شرعی مجدد و علی الموضوع اللغوی که اگر این رو هم ما در اصول زیاد داریم در فیغ زیاد بهش اصطلاح داریم که آیا مثلا این لحظه که اینجا آمد آیا مراد اون معنای اصطلاحی شرعی یا معنای لغت مثلا انداره که مسافری که لا مقاملهو اقامه نداره اینجور مثلا خب بعضا مراد از اقامه اقامه شرعی است که ده بعض روزه بعضا مراد از اقامه مطلق اقامه است. اینو نه این ای خود در روز ارف این مسئله را هم ما در اصول داریم انصافا در سر مواردی داریم بله علاوه لفظ شارع بله و لهو مسمن لغوی و مصمن در اندل معترف بالاسمان شرعیه قال قاضی ابوبکر تفسیرا بله عل القول بالاسمان شرعی حیات شرعیه و قال قاضی ابوبکر مجمل و قال باب از اصحاب و اصحاب ابی حنیفه انهم محمولن عل مصمن شریعی این هم داره راسته این هم است که لطیفه و شبیه هم بحث سابقه میکن این بحث سابقه این که در آن هم بین این که هم معنی لغوی آن باشه حبون شریعه جدیدی باشه دومی بین شریعه و است. این مسئله بدی نیست این دوتا مسئله تقریبا مرجعش نیست بخش بعدی که در کتاب احکام آمده بیان و است. که ایشون بحث مجملان بیان رو جدا کرده و در اول شروع کرده یک تعریف برای بیان مبین و بیان که بله مرال از اون چی؟ بعد توضیحاتی داده بعد مسائلی رو هم متعرض شده البته این مسائل رو انصافا بعضی هاش اصولیه و در اصول ما اونها نیاز داریم اما این حالا کجا باید گفته بشه محل کلامه مثلا مسئله ایشان آیا فعی میشه بیان باشه یا نه چون معروف بین علمای های اصولی شیعه و سنی طبیعتش اجمال داره به خلاق لحظ لحظ دلالتش محدودتر و بازهتره اما خیلی مقدارشون فیانبرکم وقتی درمی آمدن پای راستشون میگوشتن این اگر به لفظ باشه مثلا بگه شما واجب است با پای راست مثلا وارد را مسجد بشین با پای راست بشین لفظ عالم خاص داشت اما آیا فعل خودش میشه صلاحیت برای بیانی داشته باشه یا نه این ایشون میشه مذهب اکثرین ان الفعل یکون و بیانن عن صفته <تصفح> شازه با مثال مشهور خود انی مناسک کردم سلو کماره ای توونی و, و سلی لیکن انصافاً خیلی فی نفسه بیانیتش واضح نیست اونجا چون گفتیم خودوانی مناسک کن چون فرموده بله انصافاً واضح نیست بعدم وقتی که ما مجموعه مناسکه نگاه میکنیم روشن نیست که به اصطلاح همه الزامی باشه اون این مطلبش خیلی روشن نیست البته شبیه اونم ما هم داریم شبیه این بحثی که ایشون کرده مرحوم آیه هم این بحث دارن سمراتی هم در فیقه داره چون یکه در موارد شک شده آیه خویی تمسا کردن بون حدیث معروف همما در فیقیت سلاح که حضر برنشان درکت نماز کندن و اطلاع نهادی سلاح لا یقبل الله الا بها وقت در موارد شکشون ایشون به اون فعل بیانی تمسا کرده. در اوره اگر من بخوام ملزز کنم در اوره تا آدم در حال تجزیه لازم کف دستش هم این دستش صاف می‌ذاریم بذارین ناز گرفتم چی سلام می‌بگه دست رو زمین هست اما وسط دست اون وسط کف اون رو زمین نیست بیا بالا مثلا دستش اینجوری بیا بالا که وسط کف رو زمین قرار نگیره خب در اوره گفته اشکال نداره اصلاحاتی که میگه دست دستم چهو می‌کنه اما اگه کسی اشکال میکنه یا نباد کاملاً دست باز چرا؟ چون امام صادق نماز کندن همین جو کندن، بنن فرمودن اینا الله لایق بل، طلا نه به دیسورة، و از هر جهشک بکنیم به فعل امام برمیگریم، درسته؟ یشود؟ نه اما مسجد زمان جواب؟ دلیل، اون مسجد که انجوش است، دقیق دکتر انصاف در خود فعلی فی خیلی بیان نیست مگر اینکه قرینه بیاد در مقام بیان باشه و الا انصافه به نفسه و به نفسه با